خیلی خوب دوستان سلام آرش هستم از رادیو دال این مدت یه مقدار من احساس می‌کنم ماجرای داشش تکراری می‌شد حوصله منم راستش بخون داشت سر می‌رفت همیشه با بچه‌های صحبت بکنم که قضیه مهاجرت کم کم داشت لوس و خسته کننده می‌شد برام الان اینجا باق علی سخابتی هستم حد اقل چیزی که میتونم بگم اینه که یه پادکست دارم به اسم پادکست 822 علاوه بر این یه وبلاگ هم دارم به اسم alisakhavati.com می‌تونید مراجعه بکنید ببینیدش الان از قضای روزگار دست سرنوشت یه جوری ماجرار رو به هم زده که الان من تو منزل آقای استخابتی نشستم و کنار هم دیگه داریم این پادکستو رو زرد میکنیم سلام دیگه سلام حال چیز مرسی ممنون و چکر. تا اینجا روز خوبی بوده؟ تا اینجا... چه دقیق نمیدونم برای شما روز خوبی بوده برای من روز بری بوده خوب... چیش بد بود برای تو؟ بالا اینجاش بد بودش که بزنو دیگه دیده کلی به بچه ها که الان ما داریم چیکار کار میکنیم ولی همین شد بفهمن دیده بعد قضیه چیه الان من علاقه یه مدتیه داریم من دیگه روی کار میکنیم روی برنامه داریم کار میکنیم با همدیگه داریم جلو میبریمش و تاش که داره جلو تعمیر علاقه داره خوشحالتر میشه من دارم ناراحت می‌شم شما علاقه ماسل نماینده رو می‌مینه بعد این یه جا کیلش می‌کنه اینجا باگ داره اینجا باگ داره من خب این باگا روز به روز بیشتر میشن برای همین دارم میگم البته منم خب برای منم روز خوبیه کم کم داره کار به نتیجه میرسه خوشحالم اما ما که اینه که جالبه که الان ما به اینجا رسیدیم از کجا شروع شد؟ به اینجا رسیدیم. از کجا شروع شد؟ این خیلی سوال جالبیه. <Fragen> الان میخوای یه مقدار خودتون بگید چون فکر کنم شما روش خودتون یه مقدار رو بگیم بهتر یه نفر بتونه دید پیدا کنه که چی شد. چون در واقع من خودم رو انداختم تو مسیر شما شاید. بر همین مسیر که شما داشتید من خودم رو خودمو انداختم تو مسیر. مسیری <مقطع>. <والدار>. که شما داشتیم می‌رفتیم چطوری؟ مسیری که من مرد... داشتم می‌رفتم این بود که من یه بار یه یه کسی میگشتم که برای صدای سلامت که یکی دیگه از کارامونه یه محتوای آنلاین تولید بکنه به خاطر همینم یه متنی رو روی رزگام نوشتم که اگر کسی میتونه کار بکنه تو خونه برای خودش میتونه ترجمه بکنه میتونه یه کم مسئولیت کار خودش رو به قضیه بدون اینکه نیاز به تایتل شغلی یا رزومه ای داشته باشه که مرتبط به یه تخصص خاصی باشه یاده میگشتیم که دنبال یه میگشتیم که یه ذره فراتر از چهارچوب موجود بتونه مسئولیت این کار رو به و از راه دور از تو دو خونش از هر جایی که هست انجام بده فرآیند خیلی خیلی جالبی بود ده دوازده نفر به, به واجهی که من تقاضا کرده بودم کارنامه فرستادن یعنی تقاضای کار یه نامهی نوشتن که مشتاقن این کار انجام بدن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 شاید اینجا دیگه رزومه جواب نده این کانال برای همین شد برای من خیلی جالب بود به جای اینکه من خودم ارزه بکنم باید بگردید ببینید من کدوم سراشیوم میتونم بروام گفتیم ما این مسئله رو داریم حالا کی میتونه بیاد این مساله رو حل بکنه این یه بعد جذابیاتش بود یه بوده دیگه هم همین اینکه آدم به چالش کشیده میشد حداقل تو کارنامه رزومه یه مقدارن خسته کننده است خب من این بودم منتها منادم برای کارنامه‌ای که برای شما فرستادم اصلا کامل شروع کردم با یه دید دیگه ای گذشته خودم رو مسائله کردم بررسی کردم برای خودم یه تجربه لذت بخش بود یعنی جدا از اینکه من میتونستم با شما هم بکنم یا نه این که یه کارنامه ای من تونستم تو این پروسه شکل بدن که یه نگ... با یه نگاه دیگه به گذشته خودم نگاه کنم خیلی تجربه لذت بخش جالب بود اگه شد اینو مثلا حتماً تو کانال گذاشتم بچه هم ببینن جالب تر از اینکه زمان گذشته بود یعنی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 کارنامه تو منو به این فکر برد که خب حالا اون تولید محتوامون که حل شد بذاره ببینم آرش که گفته من برنامه نویسی میکنم دوست داره تو این فاز یه همکاری دیگه ای بکنی یعنیم جالبه من چون کارنامه که فرستادم در واقع تصور این بود که یک شغل با عنوان تولید محتوا وجود داره من با این دید اصلا شروع کردم اقدام کردن بعد شما اینه گرفتید این کاملا یه چیزه دیگه.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 من نمیدونم چی بود توی اون تیم چقدر سر کردم فیت نشدم از تیم اومدم بیرون بعدا سر کردم جاهای دیگه برم توی شرکت دیگه آت استور هم داشتش خیلی هم فوق العاده تیم خیلی خوب ب سر افراد خوب آینده دار دیدم اونجا نمیتونم کار بکنم دیدم اونجا هم نمیتونم کار بکنم چرا نمیتونستی کار بکنی؟ مزل چلنج چی بود؟ <تصفيق> بهش ب کرده بودم حالا این به صورتاعت.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 بعد خیلی از افراد میتونم دارم پول میگرم میرم این کار انجام میدم اصلا مغزم راضی نمیشه که یک چیزی که براش مهم نیستش رو بهش فکر بکنه و انجام بده یعنی بهش میگن خیلی خوبه الان پول گرفتیم اوکی بشین شروع کن کار کردن مغزم میگه نه نه من فکر نمیکنم براش خیلی مهم باشه راست دیشب فیلم مر یادته <تصفح> <تصفح> میگم پول میدم به برای این ساعتو در کل این به این نتیجه به نظر نتیجه گیری حداقل بود که زندگی کارمندی شاید خیلی با من جور نباشه. البته برای اینکه من به شدت آدم تنبلی هستم. صبح حداقل دو ساعت من با طول میکشید تا از خونه‌مون برام و محل کاره اونجا... ای, یکی از چیزایی که اصلا تو مصاحبه من فکر من جذب تو شدم هم که گفتی تنبل هستی من فکر یه وجه مشترکی بین ما پیدا شد. ولی اصلا تو کارمه خیلی مشخصم من نمی‌خوامش <تصحن> چون... امتیاز بالا به دادن <تصحن> دیدم تو تنبلی اصلا آره نمیتونم واقعا بعضیا یه پشت کاری دارم من صبح سخت بود برات پشتی به کار صبح همیشه, همیشه یعنی من بابام خیلی عادت داشت میگم مثلا به تدریج عادت میکنم مثلا پنج سال میذشت <تصح> من بعد پنج سال هنوز عادت نمیکردم نمیدونم منطقش چیه چطوریه یا مثلا دارم میگم آدمی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 و این که اون آزادی عملیه <تصفح> اون آزادی عمل <تصفح> سرپرستم میره حرف خوبی زد یه کاری گفت انجام بده من خب انجام ندادم بعد حرف خوبی زد گفت نه من چون درد کشیده این موضوع نیستی نمیتونی درک بکنی که من چرا دارم این رو میزنم و بهش بگم آره راست میگی یعنی دارم واقعا دلراست میم من درد کشیده اش نیستم بخاطر انجامش نمیدم اما الان این کاری که دارم انجام میدم اصلا کار خودمونو نمیپیشونام اما شاید کارونا رو... راستش میگی اما حالا تمام تلاشم میکنم حداقل روز قبل من شروع میکنم شما این روز قبل شروع میکنم مصمالی کردن در دیوان اما تا قبل روز قبلش دارم سعی میکنم کار رو درست پیش ببرم برای همین که اینطوریه یعنی شاید اون حسی که حس من دوست دارم احساس کنم این چیزی که هست برای منم هست اون حس و اشتیاق خیلی از کار شرکتی به این نفر مثل من نمیدن و از اون طرف من دوست دارم خلاقیت به خرج بدم دوست دارم یه راه جدیدی رو برم بازم اینا مسائل نیستش که خیلی پذیرفته باشه به خصوص توی های سنتی شرکتی که وجود داره یه نفر مثل من هی میگن چرا دست و پا میزنه چرا داری بول میخوری بشین کارو تا انجام بده دیگه برای همین اون ساختار جواب نداد و تصمیم گرفتم کلا بذارم کنار من حوزه نویسی رو که خاطر همین اومده بودی سرابت تولید محتبط دقیقاً دقیقاً چون وقت کتاب خونه دوست داشتم زم قوی بود گفتم بذاری مثلا یه مقدار یه بعد دیگه ای رو فر دیگه آره جاله اصلا قبل از شما یه استارتاپپ دیگه اون شرط کار ریموت رو به من میداد اما دیدم نمیخوام می درگیر درگیره یه همچین کار جدی خوش که دوست ندارم اونم خیلی آینده داره مسلماً اون استارتاپ موفق میشه تو کار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 چه من بیا باشی ستارت داون مثلا را به انداز میدونی چون استارت ها ما روز اول به این واجبان و مشترکی به نظر رسیدیم به ولی شد... <تصفح> <تصفح> شما به نظر از بزرگ شدن یه مقدار اصلا دوستانید یه کاری که میکنی یه خیلی بزرگ بشه نه واقعا واقعا. من دوست دارم این مسئله مساله باشم الان هندوش کنم چند نفر دیگه از این استفاده بکنم مم. یه پولی به هم برسه خب مگه تو استارتاپ بزرگ شدن ها این استارتاپ حتما یکی از پارامتراش اینه که آماده باشه برای بزرگ شدن و اسکیلینگ و اینجا شدن. شدن. آره من نمیگم اتفاق خوبیه است بعد من که من انگیزم این باشه من صرفا کاری که دوست دارم انجام میدم در کنار شما و اینکه یه مسئله یه بابای رحم تو برای حلو... حلو اون مسئله کار می‌کنی نه برای بزرگ شدن ورقه اسکیل رسیدن دقیقاً این خیلی و فکر کنم شما با همچین دیدی بودید همچین دیدی رو نسبتاً دارید که بعد روز اول اومده ما این توی نبودیش که من فاندر میشم تو کوفاوندر میشی من سی او میشم تو سی اف او بشو یکم سی تی او میشه. <تصفح> یعنی خود یه کاری داریم انجام میدیم برای خیلی هم... مشکل تایتل نداشتیم این هم یه مسئله خیلی بزرگی که ما بوروکراسی و خیلی این چیزا رو نداشتیم <تصفح> من رفته بودم اونجا روز اول سه تا NDA نان دی اسلوجر اگریمنت تو چه میدونم مثلا فلانو به جونه بابا به کسی نمیگم و بعد اینو امضا کنم من من این هم نمیتونم مثلا ارتباط قرار بکنم و خلاص همه اینا میخواستم بذاریم کنار ربلگ شما اینو دیدم مطلب فرستادم و خب حالا همه این حرفا رو ما زدیم توی اون جلسه اولی که توی کافی شاپ هم قرار گذاشتیم شما تو خوشتون توی چیزه؟ توی کل پذیهفی خب چقدر تو خوشمین بودی که این مثلا این فرایند همین که به نظر میرسه اتفاق بیفته یه ئله هست اینه که...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 نه من از من استاد دویدن و چه میدونم؟ دونیم؟ خیلی... تو تو چند وقت وقتی شدم دانشجو بودی یعنی تو فوق دیسانته. آره. من تو فوق دیسانت. من تو خیلی جوانتر از من این دیسانتی <تصفح> فاکی است. گوش میدن بزن هات بذارم. آره آره. اه... آره من کتابشون یکی از استادمون برام فرستاد که هم دمشکم. از استادمونم دانشکده میزنم اصلا استادیت. اه... فوقا دستا هم بود این استادت. با اینکه من بهش دوکتور. همیشه بهش میگفتم دکتر، همیشه هم من اسلافی کردم. مم. آره این کتاب این برام کتبتون رو فرستادش و جالب بود برام. دیدم اون دیدگاه خیلی نزدیکه. آره م... تو فرستادی برای برای نشون. برای یه لیست خاصی داشت این استادمون برام لیست سرسال می‌کرد. چون انحراف ژنتیکو احتمالاً ایشون می‌دونه. <تصفح> آره دقیقاً دقیقاً. فقط یعنی حد که اینکه مثلا می‌رفتن پیشش صحبت می‌کردن، همیشه میگه فارغ سعی کنم باشی. چون میگه گوزفند ها حرکت میکنه مثلا یکی میره اونجا، و همه پشت سرش میدازن میرن اون بره. اما بوز همیشه مثلا نگاه میکنه میره چون من بالای تپه میره اصلا به شکل تکنیکی هم که میدونی گوسفند گریزره گریز میکنه میچره سرش همیشه پایین میچره خب بوز به اصلا به شکل تکنیکی براوزره براوز میکنه چه چاله؟ میچرخه دنبال غذا و اسکن زیر. سرشو زیر چششو که هر چی هست جو بخوره به جلو شش به دور و از براوز میکنه خب در حال خدایی خدا این بوزانسیل براوزینگ گوت توی تو تو دیدم آره بنظر آره آره مثلا اتفاقا باش در تماسین خیلی تاکیدات تو کودک درونت خیلی داره دست و پا میزنم در تقللص حالا خلاصن کتاب فرستاد فرستادم از همون زمانی شروع کردم به بلاگ شما رو دنبال کردن چون میدونم یه دیده جالبه به نظر من داشته. یه دیده واقع بینانه به زندگی اینجا دو و فرصت داری از من تعریف کنیم از برسته نمیزه، خیلی دارم میگم، ما تا قبل اون دانشگاه یه محیط خیلی مصنوعیه یه محیط خیلی مصنوعیه، اون بازخوردی که میگیری شاید واقعی نباشه نمیدونم یه سر پارامترهای درگیری که من بلد نبودم، کارا رو خیلی خوب، اما دی وبلاگ شما یه دیدگاه واقع بینانه به زندگی نشوند که علاوه بر این که می‌دونید زندگی خود چیزای خوب داره چیزای بد داره خیلی اصلا امری به این بدیهی به این سادگی رو خیلی در نظر نمی‌گیرن که یه سری چیزای بد هست <تصفح> و یه سری چیزای خوب هست کلاً خوب یا کلاً بد نیستش یه تعادلی بودش یه نگاه جالبی بود اینجور مسئله جذبم کرد و دیگه وبلاگ شما رو دنبال می‌کردم تا مدتها و میگم تو این جالب چند سال الان من دارم دنبال اتفاقا خیلی دنبال شما چطور کار کوچینگ هم انجام میدید میخواستم به اینجا برسم که چطوری شد اون روز اول ما یه فکر میکردم این کار میگیره یا نه حقیقتش برام مهم نبود اه. چون حداقل من خودم چیزی که دنبالشم اینه که تا 30 سالگی من خیلی برای چی چیکار میکنم به نظرم نمواد مهم باشه مهم اینه که با کی دارم این کارو انجام میدم اون سه سالی که مثلا تو شرکت بودم من درر اصلی کهونده بودم بالا سرم بود. یه آدم بالا سرم بود که واقعا دیدی کامپیوتری جالبی داشت یعنی واقعا یک مهندس کامپیوتر واقعی بود میگن یه پروستری همینه که تو مارشال آرت اون راه رزمی یکم بهشن شوهر شو یعنی نگاه،, نگاه کن بعد میگن تکرار بکن تقلید بکن بعد جذب بکن بعد اینوویتن اینوویشن انجام بده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 اول چی فکر میکردی؟ آیا این فکر الان تکامل پیدا کرده هست نسبت به به درد بخور بودنش تغییر کرده یا نه یه چیزی که من ازم باشد شما خوب با هم بکنم این دیده اِوولوشنری که هر دامون دارین اون روز اول اصلا شما این پارتو کوچیک که معرفی کرده خیلی فرق کرد می‌کنه با چیزی که الان هستش و خب این پروسه خیلی پروسه لذت بخش بود دیگه البته برای اینکه من از این کلاپوریشن هم که داشتم خیلی لذت می‌بردم چون می‌دونید من لزوماً به هیچ عنوان نمیگم حرفایی که میزنم دوست دارم پذیرفته بشه اما حرفا دوست دارم شنیده بشه این مثلا این ب... محیط خیلی خوب بینم با به بجنومان داد که هر دو طرف حرفا رو میزدن حرفا شنیده میشه تا به نتیجه میرست این برای خیلی پروسی لذت بخش بودش و خود پرتاک من والا بیشتر از این کنشکابم که ارتش شما گفتیم تو صدای سلامت کار میکردین این که یک سالم درگیرش بود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 ولی اگر ایده ی ای چیزی داشتم می بایست از طریق یک کسی دیگه انجام میشد خیلی جالبه ها این که شما شریف هم خوندیم درسته؟ من شریف خوندم بعد... <تصفيق> <تصفيق> خیلی جالبه که آخه میدونین من این حرف خیلی جالبی میزنی چون نمیگم به هرکس تو هر زمین تلاش بکنیم میتونه به نتیجه برسته منتها من خیلی به افراد میگم که شاید هر کسی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 یا وقت خودکشی کنم یا برم تیمارستان <تصفيق> خیلی خیلی سخته میبرم بخاطر اینکه من اصلا نمیتونم به جزیات فکر بکنم و تمرکز بکنم من من فقط با کلیات برمیرم خیلی اصلا جزیات دیگونه میکنه من دیگه برنامه‌نویسی هم خوب تا حدودی زیادی همش جزئیات جزیات در حد یک کراکتر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 این شوخی دیگه من رو به خودم روشن کردم و از برنامه‌نویسی اومدم کنار ولی خب گهگوداری بوده که هنوز هم هست برنامه‌نویسای خیلی کوچیکو دوست دارم مثلا اینکه در حد 20 خط 30 خط کد باشه اسکریپ بنویسم مثلا یه لول س... کشی رو شما می‌تونه خیلی خوب انجام بدین که مثلا شما سرور مرو شما میل سرور رو راه انداختین مثلا اینجوری کارو آره من چون چند سالی هم یونیکس ادمین بودم چون خیلی دیگه کارای ریز ند داش کلانتر و تر توش می‌کردم اونجاها دیگه برنامه های اسکریپتی و اینا رو گرفتم و هنوزم می‌کنم مثلا بخوام یه کوئری بنویسم در این حد اینو ولی بیشتر از 20 خط 30 خط که بشه مثلا بخوام تو 2000 خط بالا پایین برم این،, این دیگه در طب باز خیلی خوب تونستین یه رادر روح رو پیدا بکنید یعنی بنظرم یه یونیکس خیلی جای خوبی بوده برای یه نفری مثل شما یه حداقل هایی رو داشته که اونم, متون... اونم خیلی اتفاقی شد یعنی باز اونم نبود که مثلا بشینم برنامین ریزی بکنم یا فکر بکنم که من اینجور آدمه هستم یه همچنی که بردرزم میخوره اونم اتفاق افتاد حالا بحثش دیگه خیلی طولانی. نیشه اینجه به نظام تا الان در اون ماهیهی بشه هست توی که چقدر اتفاقات مهم نه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 میتونم بگم درایوراش یک از چیزایی که باعث آفرین نشست در کنار حالا همکاری با برادرم و یه شریک دیگه و زحمتی که تمام کسایی که تو این راه کشیدن یه دلیل خیلی آسمانیش افسردگی شدید من بود که من یه افسردگی شدید منو کشم به مطب روان و اونجا به ایده مشاوری تلفنی رسیدم و بعد این مسیر دامه یعنی اگر من اون روز انقدر دستور نبودم شاید الان بجای پرتاک ما داشتیم درجب یه ساندویچی صحبت میکردیم شاید مثلا من و تو اینجا نبودیم تو یه جای دیگه ای بودیم من یه ای بودم که احتمال زیادم همینطور همینطور میمون. بنابراین همه اتفاقی که الان اومدیم امروز این صحبت می‌کنیم. درست درست جالبه حالا همینجوری که گفتی یکی دیگه از دلایلی که به نظر من چون من حالا شاید گفتش این استعدادو دارم که یه چیزی که واقعاً کار بردی باشه و میتونم تشخیص بدم حالا نمیدونم خب میتونم بفهمم یه ایده چقد چرته نمیتونم آفن. پیاده سازی بکنم اما این و فکر کنم این افسورده بودن شما و صدای سلامت کار کردن و اینجور مسائل باعث شده یه همچش ایده بیرون بیاد که من میتونم باش ارتباط برقرار بکنم یعنی این خیلی مهمه که الان این ایده‌ای که داریم روش کار می‌کنین بنظر من واقعا ایده عملیاتی رو به درد بخوریه این پیشینه ای که شما داشتید یعنی تو این یه یروس یه شب مثلا خواب بلند شید بعد به این نتیجه برسید که مثلا آقا من خیلی تاکید مثلا یه بخچه رو شنیدید؟ بله نون میبره دم در, در خونه ها آ واقعا این دغدغه مشکل تو جامعه ما اینه بله. من ب... من نمیتونم با همچین چیزی ارتباط برقرار یعنی تو جامعه ای که ما داریم تو مشکلاتی که ما داریم بوی پول میده برای من ایده مثل بغچه اما ایده مثل پرتاک برای من بوی پول نمیده یعنی <تصال> که خب امیدوارم به شاید توش پول در آورد. امیدوارم که بوی پولم بده. <تصال> <تصال> امیدوارم بوی پولم تا جایی که میشه بده. اما برام مهمه که اون حس انسانی پشتشه که یعنی یک انسان یه نیازی داشته، یه مسئله‌ای رو دیده و حالا میخواد حلش بکنه. آره واقعاً صرفاً اینکه مثلا میگن توی اندروید خیلی پول هست این قبل از اینکه به پول خیلی به پولش فکر کنه مثلا همون موقع شاید خیلی بیشتر از امروز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 که الان خوشبختانه این خیلی کمتر شده یا اصلا نیست. ولی قبل از اینکه این باشه این بود که در خودم نیازش رو میدیدم یعنی به عنوانی آدم حس می کردم که و مطمئن بودم که یه چند نفری دیگه هم قطعا مثل من هستن که نیاز داشته باشن تلفنی با این نفر صحبت بکنن دقیقا و حالا این رسیب داشتیم این صحبت می کردیم رسید به اینکه الان فکر می کنم خب خیلی هستن که دوستدارن به جای تلفن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 الان دوریم برژنگیه کم اونو میدیم بیرون دیگر میکرم به بیننده ها بگم یه ماهش من درگیر فاقی دیستان سویم بیننده ها شنونده ها چیزی میخوای به ذری بهشون نشون مدیم من این بیننده ها رو زیاد میگرم اما آره این چیزی که داریم میگین اتفاید توی این پروسته همین که پروسته خیلی ارگانیک بود آفرین آفرین خیلی لذت بخشه که من توی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 حالا خلاصه اون چیزی که تو میگی من دوست دارم انسانی باشه بخواد اون بود از انسان بودن بیاد توی کار چه ویژگیهایی اون کار داشته باشه که این بعد انسانی بودن توی محصول نهایی یا تو, تو،, تو کل فرایند تو همه چیش مثلا شاید یه بعد اونه که فقط پوله نباشه یه معناییم هم فراتر از اون پول یه نیازی هم فراتر از اون پول هست درسته به نظر خود من چیزی که خیلی این رو متمایزش میکنه از ماشین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 اینجوری ببینم به خاطر تجربه‌ شما گرتون باشه روزoverline ایده رو به هم مطرح کردی من داشتم به چیز فکر می‌کردم چون روز اول ایده ما فقط مسئله پزشکی بود من داشتم به این ماشینی فکر میکردم که اون پشت رو جواب بده آره جابلد. یعنی من با هر کی دیگه هم صحبت کردم در مورد این پلتفرم امین پیشنهاد داده و من رد کردم این یعنی تو ناخوشاگوهم من چقدر هک شده این پروسه ماشینی آره. بودن آره. اما واقعا الان تو دو به خصوص در ما چیزی که کمتر از همه آد... این اون چیزی که من دنبالش همون اینکه نفر باشه بتونم باهاش به من یک انسان صحبت بکنم درک بکنه مشکلات منو بشنوه و بازخورد انسانی بده من نمیخوام بدونم که آره مثلا قدم قدم چقدر وزنم چقدر الان چه مشکلی دارم یا ندارم این خب دوستم یه نفر باشه بتونم بازخورد انسانی از نظر من حالا تو هم نظرتو بگو از نظر من اینه که وقتی من داستانمو برات میگم تو هم داستان خودتو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 دیگه چهل ساله و با اون میپزه با اون میجوشه و چیزی که من به تو میگم در جواب به تو یا در ادامه گفتگو حاصل ترکیب کلی فعل و انفعال شیمیایی که اون تو دیگه اتفاق میافته. ولی یک کامپیوتر نمی‌تونه این کارو بکنه نه یه کامپیوتر نمی‌تونه بازخورده انسانی از نظر من یعنی این. و دلیلی هم که ما خیلی سر داریم که اگر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 حتما دقت کردی اه، اه، همیشه اینو لحاظ کردی درست میگم درسته یعنی بازخورده دو طرفهی که داشتیم دیگه این دقیقا اتفاقی که افتاده خیلی لذت بخش میکنه کارو دقیقاً یعنی اینم برام جالبه که تو این پروسه یه جوری به شناخت متقابلی ما تونستیم برسیم یعنی صرفاً اینطوری نبوده که آقا این کار هسته این برای من خیلی واقعا این یه نفره دیگه این شرط معیار میشد که با یه نفر دیگه هم میتونستم کار بکنم با یه دستمزد خیلی بالاتر مستلماً <تصفيق> با یه کار چه میدونم شاید گنده تر با تیم بهتر با خیلی مسائل دیگه اما اون حس انسانی که الان من تو این کار دارم آقا من با شما مطرح میکنم شما یه بازخوردی میدیم من یه مقدار شما رو میرسستم شما نمیشستی در همین حین یه اتفاقاتی هم داره میفته که هولوحش کار هولوحش پرتاکه و اینم این, این کار لذت بخش بکنه شاید بشه گفت یه جوریه خودش این ایدئولوژی رو داخل خودش پرورش شده که دو نفرند یه سری افرادن دا سعی میکنن با تو این پروسه همدیگر بهتر بشناسند به همدیگه کمک بکنن یک انسان به یک انسان دیگه من اینو خیلی میپندم بر برام... و بخصی که محتواز ما تو جانا محتوا خیلی برام کم اهمیت شده. اه اینکه ما داریم یه بستر فراهم میکنیم که حالا این محتوا ارزش پیدا بکنه. این محتوا من ب... میرم سراغ یه نفر با خاطر محتوایی که در اختیار من میذاره این به نظر من خیلی با ارزشه. به خصوص شرایطی که ما داریم که فقر محتوایی داریم. فقر محتوایی. آره. تو به من میگفتی که حس و تو این دو سه تغییر کرده، خوشحالتری. آه. <تصفيق>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 به عنوان مثال این که آقای قلب ما به نظر لگت خورش خیلی خوبه <تصفيق> آره. بعد قبل ماجر و دختری بود ما هم رفتیم و جوان خام بی دل دادیم گیر کردیم و دیگه آقا سوختیم <تصفيق> هر کاری هم کردیم درست نشد کتاب به مسافرت برو چه میدونم با دوستا بگرد لعب و لعب همه کار کردیم نشد تا زمانی که من درگیر این کار شدم و خب اون زمانی که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 همه اینا اگه اون کایه کاری انجام میدی که واقعا ازش لذت ببری بتونه غرقش بشی که واقعا داری از این کار اینقدر لذت یا داری اقراق میکنی من درخرف ببین نمیدونم اقراقامیز به نظر میاد <تصفح> واقعا داره. خیلی اقراقا به نظر میرسه و بگم خیلی سخته ها یعنی من تو شب واقعا میرفتم میگفتم که آره من برنامه‌سی نمیتونم بکنم چون مثلا سه ماه قبل من سایت نمیتونستم طراحی بکنم یعنی تا حالا من سایت طراحی نکرده بودم اخه شمال خیلی راه می میگه آره آرش سایت لازم داره یه بدیهی جلوش میدی موضوع بعد منم نترو در کار یکم میکنم آره هیچ کاری نمی برات میکنه در نه منم تو رو در ورس خراب نه خیلی کاره من مثلا ایده ها ایده زیاد داشتم من یک دو تام بدون نشون دارم مثلا سال روی ایده ای دارم هم کار میکنم یه فرم HTML درآوردم بچه‌ها میای اینجا یه حرف میزنی بعد بدیهی هم جلوش میدی بعد من تو رو در ورس میگم آره باشه برو واسایت رو بعد میرم خونی میذارم تو سر خودم که مسلما این چند وقته خیلی چالر زیاد بوده چون من از اون طرف سربازی هم دارم ایناددار کار سربازی ها رو بعد انجام بدم پروژه مروژه در از اون طرف فوق لیسانس هم من بودم این سر اتفاقات هم افتاد خیلی من این واقعا من اولین بار خواب پریدم این چند وقته یعنی تو این مدت شب و می پریدم. درگیر کار بودم و اینجم مثلا فکرم در رو اما به چال ش الان من وقتی یه محصول نهایی رو می این محصول،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 سعی نمیکنه حرف ای بزنه یعنی من خوشم میاد خیلی ساده است، خیلی جم و خیلی کوچوله. سعی نمیکنه استالا هم گنده گویی کنه بعد گنده گوزی <تصفيق> <تصفيق> من فکر خیلی سعی کردم آره خلاص همون که گفتید و آره این کار رو نمیکنه در این حال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 میتونم دیگه لازم نباشه با دکتر ایران راحت اکس میفرستم برایش چه میدونم اگه موضوعی لازم برایش میفرستم تو هم بدتر از من تا حدود زیادی درونگره و ریکلوس هست دیگه من یکی دوستان گفت باید تو درونگره تر از اون برونگره هستی که به نظر میرسه آره برای همین این ترجمی دیگه یه سری از, از, م... از م... کامونیکیشن ها تو از رایت دور انجام بدی خیلی خیلی آره زیاد. آره خیلی زیاد.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 و میکنه که هیچ کس دیگه ای نتونه یعنی دقیقا در تناقض با تمام آرمان ها با و با چیزهایی که من تو زندگی داشتم میگفت اما الان مثلا توی این پروسط من این شانس داشتم که از چیزی استفاده کنم که نزدیکتر بودم به تفکرات خودم من اون چینشی باشه که بیشتر برام جذابیت داره و اینکه این open بودن سمت شما خیلی برام چیزی دیگه چون میگم گفتم دوستام شنیده باشن اما انتظار ندارم پذیرفته بشن با این پذیرش که از سمت شما بود باعث شد چه خلاقیت من ببینید اول که مثلا شاید جرقه یه کوچیکی بود اما دارم میگم نه مسین که داره جواب میده ولی نمیدونم کم کم بزرگتر بزرگتر شد برای همین دارم میگم شاید شواز خواب پریدن چون یاد دارم میگم مثلا اونجا رو اونطوری بکونم و این اونجا اونطوری شده بودش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 دفتر کاری داشتیم که مثلا هر روز صبح می اومجای تا 8 9 ساعت کار کنیم کنار هم دیگه خیلی وقتا ما اصلا 3 4 روز یا حتی یه هفته از هم خبر نداشتیم درسته یعنی واقعا یک هفته ای تمام میشد که ما حتی یه متن تلگرام با هم دیگه متقابل نمی کردیم تو داشتی کار خودت رو می‌کردی من داشتم کار خودم میکردم می‌کردم و یه اعتماد عجیب غریبی که به خصوص بیشتر من نسبت به تو داشتم که آرش داره کارش خودش رو می‌کنه دیگه و اون واسهت ها بعد مثلا دو هفته میومدی میگفتی تو چهار تا چیزام اینا رو هم اضافه کردم که خیلی سورپرایزینگ بود برای من واقعا فراتر از انتظار من توی کارهایی که اصلا ما راجع بهش صحبت نکرده بودیم یه فیچری هم تازه اضافه می‌کردی به اپلیکیشن مثل همین امروز که صبح اومدی یه قسمتی رو گفتی بخصوص که اصلا توی این ورژنمون نبود ما هفته پیش به نتیجه رسیدیم که اینو این بعدی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 نشون بدم الان هیجان زده و خوشحالم <تصفح> آره میتونه بکنم ای کاش شنونده ما بیننده ما هم بودن <تصفح> میتونستن علی پوکر فیس نمس بکنن آره من اصلا میوادم آقا 10 تا چیپ اضافه کرده بودم آره الان دیگه میرم میترکنم بعد علی آقا آره خوبه خوبه یه مقدار مثلا کام آره اما آره اتفاقا اینه که میگی من خی... اصلا خبری نمیشود یکی از دلایلش اینه که یه مقدار من بودم و هستم جالبه که روی این نقطه هم تونستیم تو مدت دست بذاریم من دارم سعی میکنم اینم بهبود ببخشم یعنی میتونید مثلا میرفتم گیر میکردم یا جاهایی و خب صداشو در نمیآوردم منطقه الان دیگه دارم کم کم عادت میکنم که ای آقا مثلا گیر کردم فلان جا یا مثلا جایی مشکل هستش این اعتماد و چمید بعد محیط کاری هم یه شرعیتی به وجود میاره به خاطر اشتباهات اصلا هیچی ازت نمیپذیره این این تلاشه به صرف خودش نادیده گرفته میشه اما خب اونم یه تلاشی بوده دیارم هم خب رو ببین تا حالا همش بحبه چهچه کردی چ... چلنجی هم داشت این دوستمانه که مثلا خسته بشی از این کار, این کار این یا نخواهی دیگه با من کار بکنی به شکر ام... راستش رو بگوید <تصفح> نه اینطوری. اما من دارم باقعا چند وقت به این مسئله خورده بودم یعنی جنس کار من تالا این مدل کار انجام نداده بودم هر مثلا کاری کامپایلری انجام داده بودم کاری وب سروری انجام داده بودم بک یعنی بکند بک ها یعنی بکند روی این بک من سوار می شدن در این حد بکندی <صدقا> بعد که یوا من درگیر این کار شدم خود خب منم تجربه ندارم خیلی تجربه فراستریتینگ فراستریشن فراستریتینگ بعد آره یعنی در همین حین که ما تو پادکست هم میتونیم هر چقد دلمون بخواد کلمه استفاده بکن این هم اینا خیلی به من کیر میده خود دارم یه <صدقا> مثلا من امروز فارسیم تمام فارسیم تموم شد دیگه الان میرم خونه یا فیلم و ویدیو خوره یا وبات نه خارجی به خونه یه مقدار دست خودت نیست دیگه مقدار خارجی حالا خلاصه نه سخت دودنش که میگه من شرایط اینا راستون بهش اذعان میکردم که عادی من برنامه خوبی نیستم من نمیدونم چیکار بکنم ماهیت کاره توی تعامله با شخص من جایی بوده که روان عذارت پیشی عذاب و بخیر بذارید کنار آقا اولا شما خیلی اذیت نکردید اصلا تعاملی من نداشتیم این در باره صفر میدونید شما کار بوزیت کردین اون فشار روانی که روی من وارد میکردین چون میگه نفرم مثل من یه همشین کاری رو هیچ بخش شد منطقا همون که بودنتون همون چنگایی چه میدونم من میدونم باید, باید دوشون جواب بدن این فشار رو... خیلی الازه روانی خیلی فشار رو بردید یعنی خواهدتون هم نمیدونید من صرفت هم... هم بوده میخوی آره نباشم دیگه بعد از این, <تصفح> <تصفح> این لحاظ اما تو تعامل من نواقعا من لذت بردم این چند وقته و احساس میکنم خیلی بیشتر از اون چیزی که دادم گرفتم جدا اه... در خیلی تو فکرن اینم زودتر جام بکنیم پروژه پندیو رو بنداز <تصوت> <تصوت> <تصوت> آره در کل پ... کل پروسه من لذت بخش بودش آره خیلی سخت واقعا خودی. الان تو سایتم بچه واسه نگاه بکنم اون... خونه دلی که اون پایین نوشتیم واقعا خونه دل بوده یعنی من دوتا تارمون سفید چدین چند وقت اینقدر این فشار کارو اما در کل من راضیم به خصوص که روز اول با هم دیگه زنگ زنم صحبت میکردیم یادم می اصلا عرفه ما مارکسیستی بود چه میدونام اینجور چیزا هم بود من میگم شما تا به قرار میکنید خیلی ناراضی برید حرفای تو مارکسیستی بود یه اجازه بدیم صحبت میکنیم راجع مسئله چون میخواستم یه بار یه نظام غیرهرمی رو من تجربه بکنم تو زنگ <تصحبت> احساس کردم الان بسترش مهیاست و واقعا در جا یک سیستم هرنیست میکنم توی چینش افقی ما قرار گرفته بودیم منو خیلی داشتم من یه نظام فعودالیستی رو مطرح کنم تو باشی برده من ولی روم نشد من حالا اس شاید روش نشد اما این واقعا نخه نزدیک اون اتفاقی که افتاده نظرم چون نشستم یه جا توی اتاق تاریک صبح تا شب هفته یه بار میام گزارش میکنم. آره اما آره خوبه راضی ام و امیدوارم مسئول نوی در نهایت چیزی باشه که بقیه هم ازش لذت ببرن چون میدونید مسئول کجا کجاست پرتاک دات آی پرتاک دات آی آره و بذارید تبریک بکنید واسه پرتاک ام اصلا به ب... درد کیا میخوره از چیزی که شما چیز کردیم به نظرم من بخ... شما بگین راجبه به کی بشن چون مسلما بددل روانشناس میخوره قصه روانشناسای صدای سلامات اولی مشتریان این خواهند بود یا بهتره دقیق‌تر بگم اولین کاربرانه اصلا نمی‌خوام خب اول اینو بگیم که پروسه چطوریه پروسه استفاده از پارتک الان چطوریه پروسه اینجوریه که یه کاربر مثلا یه روانشناس یا یه پزشک میاد روی سایت partok.ir ثبت نام میکنه اونجا خیلی راحت میتونه یک سری مسیر ارتباطی بسازه مسیر ارتباطی ما به چیزی میگیم به یه کانالی میگیم که از یه طرف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 ما به اون روانشناس این رو میدیم که از طریق گفتگو یا کامیونیکیشن یا تعاملی که برقرار میکنه با بیمارش یا با مراجعش پولم در بیاره یعنی به نوعی ما میایم یه کنتور میذاریم سر راه این دوتا مثلا یه مشاور روانشناس میگه که من میخوام یک ساعت از طریق تلگرام به مشتریم سرویس بدم با بعدش پنجاه زارتوان بگیرم ما این امکان فرام کردیم که خیلی راحت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 ترینه که خیلیا دارن به سمت مکالمه‌ها و گفتهگاهی آفلاین سرخ پیدا میکننا بگم به ساعت میدانی من واقعا اینو به سرعت عملیاتی هم دیدم می همچ استفاده ما اینکه از آشاممون این پزشک پوست رفته بود بعد حالا چه میم یه تا تا دارو ماروبه شده بود این دوست ما یه جوشی زده بود بعد از این جوش عکس میگره تو تلگرام بر دکتره میفرستاد که من یه همچین جوشی زدم من چطوری مثلا مشکل چیه چه داری استفاده میکنم و بیزار حالا الان.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 بعد که میدونه یه نفر که داره از سوال میپرسی یه می پرداخت کرده خیلی زیبا لذت بخش اه بله اه در زمینه پزشکی به شکل خاص خب خیلی از بیماران پزشکا که مجبور نیستن راه دوری رو بیان برن اه اه یعنی به نوعی تلمیدیسن محسوب میشه یعنی یه ابزار برای تلمیدیسن میتونه محسوب بشه اه توی اه خدمات روانشناسی هم همینطور این میتونه ابزار خیلی خوب آموزشی باشه برای معلم ها این خیلی من. در هر زمینه ای. اومد هر. من با اون جذب شدم هر معلمی، معلم خصوصی، معلم ریاضیات، معلم ادبیات، میتونه پکیجای مختلفی رو, رو روی این تعریف کنه و به دانش آموزاش سرویس بده نه که ما طرح تره جلسه ای هم داریم یعنی مثلا میگم یه تره من یه جلسه میخرم که صحبتی داشته باشم اون جلسه که به نتیجه رسید کسی که داره سیر رو میده میتونه جلسه تام بکنه مثلا شب امتحانه من این سوالی رو دارم میتونم یه سشن بخرم با یه استاد با کسی آقا این سؤال رو دارم راه حلش چیه چطوریه استاد جواب میده به جواب رسیدیم به نتیجه رسیدیم سشن تموم میشه حالا اگه یه سوال دیگه داشتم یه سشن دیگه جلسه دیگه اصلا یعنی به نظر من آره خیلی از آه...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 از اون شرکت بره بیرون یا هر اتفاقی که بیفته میتونن بات تلگرام مخصوص به کاستمر ساپورتشون داشته باشند و ما این سرویس رو رایگان ارائه میدیم به همه شرکت‌ها ها افراد میتونن به شکل رایگان به مشتری‌هاشون سرویس کاستمر ساپورت سرویس سرویسアフتر سیل ساپورت هر چی اسمشو میذاریم از طریق این بستر به شکل خیلی تر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 متن یا صوت هم تو طرف میتونه بفرسته الان اون چیزی که داریم هم عکس هم صوت صوت صوت هم میتونه بفرسته مو تو دیگه صوتیه که آفلاینه دیگه صوتی که هم. ریال تایم هست نه. تو هم یه چیزایی داشتی میگفتی یه کاری میخواد بکنیم با پرسی. آره من اول از همه این که از سرویس سخ... رایگانش استفاده بکنم چون مثلا تو پادکستی که دارن دوست ندارم مستقیما ایمیل یا آی‌دیمو بدم. <تصفيق> اما اصلا تو دیگه می‌دونن افراد تمایل دارن از طریق تلگرام ارتباط برقرار بکنن. دقیقاً. برای همین احتمالاً یه دونه بوت بسازم بذارم تو با... توی پادکستم کاری که میخواد از طریق اون بات با ارتباط برقرار کنه. داخل بات میره، مسیجو میزنه، اون بعد از طریق ایمیل میرسه به دست من. هم میدونید شخصیت من اون پشت میمونه همون که اون طرف میدونه خیلی راحت از اطراق تلگرام استفاده ارتباط قرار بکنه در کنارشم اگر بخوام چه میدونم خدمات خاصی بدم چون با چند نفر مثلا سوال لینوکسی میخواستم بپرسم من خوب یه کار کردم خب در کل به نظر من میگم جدای از همه اون من هم میخوام اینجا واژه بولشتا به بکارم بولچتی که هولوش این قزای استارتاپ هستش و چه میدونم خیلی محصولم عالیه واقعا خارق العاده است ما می خوام مکدی وورلد بر پلیس این جور چیزا اه. امیدوارم این حس می موفق شنوندا متعقب شده باشه که واقعا یه چیز خیلی شخصی در نهایت ما باور داریم به کاری که داریم میکنیم امیدوارم و حتی خودمون ازش استفاده میکنیم من خیلی دوست دارم اینو فقط دوست دارم کارم انقدر بره بالا که بتونم از طریق این موزیک رو بچرخونم چون بتونم تمام زندگیمو وقت این کار بکنم چون دارم داره تقریبا تقریبا تبدیل به گیدمش چیز دیگه نه نه نه من اصالتاً اما در کل اومدم دارم معرفی بکنم دا به بਾਰੇ که بتون استفاده بکنه. بسیار عالی. <تصفح> این قرارو پادکست شما کانال شما قرار میگیره دیگه منتشر میکنه این پادکست دو منظوره است. یه پادکست که آرش داره به نام رادیو دال که اونجا منتشر میکنه این پادکست. من این پادکست حالا هوای هر دو تا رو داره. دقیقاً. یعنی اینو تو میتونید توی رادیو دال منتشر کنی. آدرسش چجوری؟ اونو چجوری میتونم پیدا کنم؟ هم تو اگه تلگرام، رادیو، دالو سرچ بزنم. تو تلگرام میتونم پیدا کنم. اره. از یه طرف دیگه هم که این پادکست جانبی 822 پادکست من محسوب میشه که اگر کسی تالا گوشش نکرده میتونه رو اینترنت، رو گوگل پیدا کنه. Generated.. <تصفيق> <ints> رو یه <radio> سایت من علیسخوابتی.com بره رو آیتیونز میتونه پاکست 822 رو سرچ بکنه یا روی تلگرام کانال پادکست 822 شمه جا هستی چون من هم برم داد تو همشهری ها تو همشهری آگه نه صفحه اول روز دارم مخای صبح سر و سر کشور آره اما تجربه جالبم بودش این کار امیدوارم این حسی که ما داریم منتقل شده باشه به افراد اگر هم منتقل نشد یه پادکست دیگه زب می کنیم که سعی میکنیم حتما حتما دیگه خوب درش خیلی خواهد من لذت بردم آقا این خیلی زیبای بارونی هم بودش میشه سبودیم پادکست زبی کردیم بعد نهار ان یکشنبه یک شنبه دیگه تو میخوای تاریخ تو <تصح çıkt> دو در قرار شد این کار دو در نمیشه یک تاریخ مثلا بالا ظاهرش برسین دیگه انشالله ها بسیار عالی خیلی ممنون تا برنامه دیگر بدرود درد نکنه که تا اینجا رو گوش بدید مرسی خدا فزمه